سلام و درود من فرزان فرامرزی هستم و شما شنونده پادکست خودمونی هستید سلام و درود خدمت شما دوستای خوبم امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست خودمونی باشید. برای این هفته یک برنامه خیلی خوب درست کردم امیدوارم که خوشتون بیاد. خودم که خیلی هیجان زده هستم برای این هفته. خب موضوع این هفته برنامه ما موضوع نجات پرستی است و آیا اینکه ما ایرانی‌ها مردمی نجات پرهز و مغرور هستیم یا نه؟ اگر در جریان اخبار باشید آقای اکبر عبدی بازیگر تنز کشورمون در یک برنامه تلویزیونی یک خاطره متفاوت از سفرش به حج تعریف کرد. بریم خاطره آقای اکبر عبدی رو بشنویم و برگردیم ادامه صحبتامونو داشته باشیم. می خواهش کنم به خاطر عید قadir خان بزرگی کنید چون این حادثه اینقدر غم انگیز شما بپردازید ما من یک خاطره خنددار اتفاقا میخوام از مکه بگم. بشم. من به اتفاق مادرم دخترم المیرا حدود 11 سالش بود و خانومم مشرف شدیم مکه سال 78 بله آقا همه داشتیم میرفتیم که بریم رو انجام بدیم یهو بنا و المیرا دیدیم یه تلویزیون فروشی تو خیابون داره رازوقا نشون میده از این تلویزیون ال سی دی بزرگا اون صحنه‌ای هم بود که سوسماره میاد گوزنه رو میکشه تو آب کارو بله. کدیلی گوزنه میکشه ما ولو شدیم من با حوله المیره با چادر و سفید تو پیاده رو ولو شدیم راز وقعا نگاه میکردیم رئیس کاروانمون دنبال ما میگشت ما رو پیدا کرد و افاقا کجایی همه منتظرم بیبریم و اومدیم بریم رفت یه تلافروش بغل همین تلویزیونه من بایکس هم یک بهتره بهتری آقا سید فروشه یه پسر بیریخت دراز داشت صورت از این صورت کوویری ها های سرزرد چرک عرب دیگه عربی حرف زد با رئیس کاروان گفت جریان کیه کیه گفت این اکبر عبدی هنرپیشه مثلا گنده ایران کمدین ایران, ایران, ایران گفت اون خانوم گفت اونم دخترشه کششش دختر ما رو گرفت یهو برگشت گفت اگر دخترش مثلا بذاره اینجا من هم وزنش طلا میدم برا پسر من واسه آره گفتم به خودش بگو من هم وزن خودش و پسرش میرینم او صادقیا گفتم اینجا الان شبایتیس سوت میزنه ارادتمند شماست او عبدیاسوان <سؤال> خاطره متفاوت آقای اکبر عبدی در سطح جامعه با واکنش‌های متفاوتی همراه بود این واکنش‌ها همونطور که انتظارش می‌رفت به شبکه‌های اجتماعی هم کشیده شد اجازه بدین من تعدادی از کامنت‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد این صحبت‌های آقای اکبر عبدی رو برای شما بخونم کجاش به عرب ها توهین کرد تنها نکته منفی سخنان ایشان لحن سخیف و ته‌نداری بود که در وصف اون فرد کرد و با خاصی گفت عرب دیگه چقدر محافظ کار باشید بس دیگه همین کارار رو میکنید که اونا هر بلایی میخوان سر ایرانی میاره و شما دم نمیزنید حتی جرات ندارید پشت تلویزیون حرفی بزنید دستش درد نکنه اونا از ما میکشن ما نباید دم بزنیم شاید هم از عربستان میترسید گفت صورتش جوش داشت عربن دیگه انگار بقیه مردم کشورها امکان نداره رو صورتشون جوش داشته باشن اینا نشونه نیست. این یعنی منطق نداشتن مسلما طرف دست خودش نبوده که جوش زده و همینطور جوشش رفتی به عرب بودنش نداره اگر عبدی اول چهره طرف رو مسقره کرد بعد هم به جای اینکه رفتار طرف رو نفت کنه ادبیش رو به نمایش گذاشت مثل اینکه مثلا بیه عربه بگه اکبر عبدی دیگه چاقه ایرانی دیگه ایبی نداره هزاران سال عرب به هر روش توهین کردن حالا یک تنزی از یک هنر کمدی قابل قبول نیست حرف ایشون هم دقیقاً به یک فرد عرب بود نه کل عرب ها. ایرانی ها البته از این فرصت استفاده کردند و جوک هم ساختند برای مثال یکی از کاربران شبکه اجتماعی اینطور واکنش نشون داده بود شهرداری تهران و اکبر عبدی برای تأمین کود مورد نیاز فضای سبز تهران تفاهم ای امضا کرد. خب همونطوری که انتظارش می‌رفت واکنش ها از طرف ایرانی ها به سخنان آقای اکبر عبدی و خاطره متفاوت آقای اکبر عبدی از سفر حجش متفاوت بود حالا واکنش های جدی داشتیم واکنش های تنز هم داشتیم اما همونطور که اشاره کردم یک نویسنده سعودی به زبان فارسی پیامی رو برای ایرانی ها ستاده بود و اظهار کرده بود که مردم ما با مردم شما مشکلی ندارن و ما میخوام رابطه داشته باشیم و دولت شما هست که در واقع مسائل رو پیچیده و سخت کرده. قسمت هایی از پیام نویسنده سعودی رو بشننیم و ادامه صحبت هامون رو بعد از این پیام پی می گیریم به ملت عظیم ایران میگویم که کشور عربی ملت های عربی هیچ مشکلی با ملت عزیز ایران نداریم. ملت های عربی، دوست داره که روابط با با ایران خوب بلکه بهتر بشه ولی مشکل ما با رژیم سیاسی در ایران است یعنی این رژیم خودش دوست نداره که ها نزدیک بشن برای اینکه هم میگویند حرفتون ای عزیز ای, ازیز ای, ای ملت عزیز ایران حرفتون بی زنید همانطوری که در 88 یا 2009 میلادی گفتین که نه لبنان نه غزه نه لبنان جوانان فدای ایران امروز میگم که نه یمن، نه سوریه، نه بحرین، نه فلسطین، نه مصر جانم فدای ایران بول ایران یک کشور سروعتمنده بول های زیاد داره خوب ولی رژیم ایران این بول ها به مزدوران خودش در یمن، در حسیه ها، در بحرین می فرستاده اقتصادی ایران ها هر روز بهتر میشه و واکنش و جواب دادن به خاطر متفاوت آقای اکبر دی عته خیلی جالب است این خاطر کهشون تعریف کردن اگه بخوام پیداش بکنین توی اینترنت فقط کافی از سرش بکنن خاطر متفاوت اکبر افدی از سفر جنی این خاطر متفاوت روی این خاطر واقعاً موند و فکر می‌کنم اسم خیلی هم مناسبی باشه براش بالاخره واکنش ها خیلی متفاوت بود و افراد و اشخاص مختلفی واکنش نشون دادن من لینک‌های تعدادی از اونها رو در وبسایتم سایتتم برای اطلاع شما که اگر دوست داشتید بتونید. مطالعه کن و بیشتر بخونید آقای عبدی هم خودش و اعلام کرد در اینستاگرام خودش اعلام کرده بود که من با عرب ها مشکلی با هموطنان عربم هم مشکل ندارم و منظور من در واقع وهابی ها و آل سعود بوده خب البته ایشون هم داره از این موقعیت کشمکشی که ایجاد شده و تنشی که ایجاد شده بین ایران و عربستان فکر می کنم داره کمال استفاده رو میبره که حرفی رو که زده و حالا توهینی رو که کرده مقداری به قول خودمون بکنه اما این وسط یه ایده هم به نکته ظریفی اشاره کردم و اینکه اون پیشنهاد عرب در واقع پیشنهاد خرید دختر عبدی رو میداده و ما خب اینطوری در ایران خواستگاری نمی‌کنیم. ممکن است این عرف فرهنگی در عربستان باشه من نمیدونم. ولی هر چی که بخوام از هر جهتی که بخوام در فرهنگ خودمون بهش نگاه بکنیم در واقع پیشنهاد داده که من طلا میدم دخترت رو میگیرم. خب ماشین که نمی‌خواد بخره، خونه که نمی‌خواد بخره. ما اینطوری خواستگاری نمیکنیم. حداقل تا اونجایی که من میذارم در شهری که من زندگی کردم و اطلاعی که من دارم از ایران ما اینطوری خرید و فروش دختر انجام نمیدیم و ادهی گفتم خب اصلا حرفمون عرب زنس تیزانه بوده اکبر عبدی هم به عنوان یک پدر رگ غیرتش برخورده و جواب داده جواب دندون شکم داده و خوب کاری هم کرده که جواب داده برای ادامه بحث شنویم صحبت ادهی از جوانها رو در ایران این ها برای من فرستادن در مورد این موضوع صحبت کردن و صحبتشون رو برای من فرستادن متاسفانه من به خاطر کم بود وقت همه صحبت ها رو نمیتونم پخش کنم و گزیده ای از اون رو برای شما میذارم اما کاری که کردن کار جالبی که کردم این بوده که این عده جوان دور هم جمع شدن در مورد یک موضوع که موضوع روز جامعهشون بوده صحبت کردن و خیلی خوبه که این صحبت رو انتقال بدن در جامعه به همکارشون به دوستشون به هم محل به هم کلاسیشون و سعی بکنن که با انجام دادن این کار کمک بکنند به فرهنگ سازی در جامعه ایران. اما سوال اولی رو که من پرسیدم سوالی هست که شاید به ذهن خیلی از شما هم رسیده باشه. آیا ما ایرانی ها نجات پرست هستیم؟ آیا ما ایرانی ها مردمانی مغرور و متکبر هستیم که فقط به گذشته خودمون فکر میکنیم و به خاطر گذشته خوبی که داشتیم نگاهی عاقللا در صفیح به بقیه قوم ها و کشورها و مردمان دیگه میندازیم بشنووی جواب این دوستان اون رو. به نظر من بله. من موافقم. منم موافقم. ولی من نمی‌چنام کلی جا و سوال خیلی کلیه. همه اینجوری نیستیم. دستگیر اون فرهنگ و اون علاوه اون که تو ذهنمون هست، حالا یه نفر خیلی معروفه، خیلی نجات پرست، یکی نه نصفیه کلی نیست دستا. نمی‌چنام ما کل ایران تقریباً هم فرهنگی که میگی خلاصه که میکنی یه بخش بزرگ از موضوعاتی که تو این فرهنگ کانورساشن اصالا به صورت تنظ و غیر تنظ این قضیه رو پوشش میده مم. یعنی چه مثلا خاطره تصادق تعریفگردم باشه یا چه یه جوکی باشه این قضیه نجادی و قومی توش هست مثلا طرف میگه مثلا توی یه استان دیگه میگه با فلان قومیت تصادف کردم این طرف زبون نفهم بود بعد طرف مقابلش هم برای تایید میکن صحبت های روتینه یعنی طرف مقابلش برای تایید میگه آره اینا کلن این قومه کلا اینجوری یا مثلا توی جو که باشه همین اتفاق میفته بالا ایزاجره تر و اصول تن این تو همه ای ما هست و چیز نداشتیم به نظر من آب نداشتیم اگر نه هممون شناگره خیلی خیلی خوبه هست. اگر که یه وقتی بود که سیاه زیاد توی ایران بود، انقدر نجات پرست راجع به رنگ پوستن توی ایرانی زیاد می که اصلا اروپا اروپایی ها روزا شوچی می شد. اینجوریه. این شکلی هست. ها, ها اینجوری هست. اونا ها این شکلی ها. ولی ما اینجوری هستیم. اونجوری هستیم. ما فرهنگ اون از اینا بیشتر بوده. این می های نادرست با هر چیز کوچیکی که بخونن. یعنی مثلا کافیه بخونن تخلی جمعشی 2500 ساله بوده. ولی دوبه مثلا 20 سال پیش یه دهکده ماهنگیری بوده 25 سال پیش. همینو کافیه بخونن. دیگه چیزی دیگه ای نخونن و اینو تون باپالیش که میخوان نشون بودن نصد به این اجتماعی ایران، جامعه ایران اینو تغییرش کنن به یه قضیه بزرگی که خودشون تسکیم پیدا کنن خودشون احساس کنن یه هویت دارن یعنی من حرف من اینه که بخشی از این نجات پرستی و تبعیز قومیتی و حالا حالا به صورت تنظیر هشته دیگه بخش از این تحت تثیر شدهگی جامعه ایران این می یکی یک از ملاک‌ها باشه اما واقعا تاریخ اینا چیز دیگه‌ای میگه. برای مثال آنقدر شاهپور اول و دوم ساسانی حس بعدی نسبت به اعراب هیره و اون مناصب عرب زبان، نه مستعربی که بعداً مستعرب میشن داشته که در دو مرحله پشت سر هم به شکل بسیار عجیبی تغییر می‌کنه. یکی از اونها وقت نبرد ذاتسلاسل هست. یک کار زنجیریان که میاد عراب و از کت در واقع با زنجیر وصل میکنه به هم میبین. یا شما وقتی که میبینید در ابتدای حکومت صفویه برای نوعی تفاوت بین ایرانیان و عثمانیان ایرانیان دیانت و شریعتی جز سنت و علی سنت رو میبینیم که پیوسته ایران با تمام همسایه های خودش در حال جدا، در حال نظام بوده و حتی زمانی که قدرت داشته ابتدای دوری قایدان و سلطنت آقا محمد خان باز حتی به هم بروسی هم یعنی میخوام بگم که این ویژگی برتر دونی وجود داشته در ایران یا چیز چندان جدیدی هم نیست یا چون در مفاقین و مثال زده میشه موند از ایرانیان از صبح هست یا اشعاری که بسیاری از شعرها در مورد خطه فارس یا سرزمین فارس میگن تا کلا ایرانیا با عربا مشکل داره. یه دلیلش به نظر همون چیزی که خب یعنی عربا یک جاهش بزرگ اقتصادی داشته و ایران جاهش نداشته و یه پسرفت اقتصادی داشته. یه قسمتش اینه که خب زورشون گرفته دیگه برامون یه جوری عامیانش میشه. و یه دلیل مهمیش هم دلیل تاریخیه. ولی من حالا قبل از این حادثه ای منا بوده 5 6 ماه پیش یه چیزی توی وایبر اومده بود که یه اون کبیر گفته که من هرگز نمیرم عربستان چون نمیخوام سم اسبای منوم آلوده به که عربستان و اصلا موقع عربستان راستی چی میخواسته بره اصلا یعنی یه چیزی خود ایرانی‌ها میاره از خودشون در میارن به زبون کوروش کبیر به زبون نمیدونم یه سری آدمایی که آمه و اکثر جامعه قبولشون داره و می نویسن راجب عربام خیلی هست به وفور از این چیزایی که مندر آوردی است راجب عرب ها نوشته بشه. اما خیلی ها در دفعه از اکبر عبدی اعلام کردن که اکبر عبدی یک هنرمند تنزه و داشته توی یک برنامه جوک میگفته و ما نباید اصلا بگیم که نه این نجات پرستیه یا این بعد خب جوک گفته دیگه جوک گفته از طرف دیگه مخالفان این قضیه که اکبر عبدی طنزپردازه کمدین خب جوک گفته بر این عقیده هستن که اگر اکبر عبدی در یک فیلم یا در یک سریال حین ایفای نقش و به یک کاراکتر این جوک رو میگفت خب شاید ایرادی بهش نبود و می میگفتیم اون شخصیت در اون فیلم یک شخصیت نجات تر است هست یا یک شخصیت بی سواد هست یا یک شخصیت جاهل هست خب شاید ایرادی بهش نبود ولی اکبر عبدی مشغول بازی کردن فیلم نبود در یک برنامه تلویزیونی که میلیون ها انسان دارن اون رو میبینن این حرف رو زده بود و از این نظر کارش اشتباه است همینجا تا داریم در مورد موضوع تنز صحبت میکنیم بذار من یه اشاره هم بکنم فقط در اینکه خودتون روش فکر بکنید واقعا مردم ما چقدر جنبه تنز دارن میگن که ایرانیا مردمانی هستن که قریهه تنز و اکثرشون دارن خندوندنشون کار سختیه و کار تنز کردن در ایران کار سختیه من برای این هفت منبعی ندارم ولی لاغت همه ما میدونیم و منبعش هم هست که ایرانی ها جز قمگین ترین و عصبی ترین مردمان عالم هستند. حالا آره این که چطوریه که این قمگین ترین و عصبی ترین مردمان عالم قریهه تنز دارن و خندندنشون کار سختیه چون که خودشون اکثراً تنز پردازن، جک میگن و اهل به گوب دیگه با شما هست و برید ببینید به قولم پیدا کنید پرتغال فروش را اما چیزی که میخوام بگم این است که برای مثال آقای مهران مدیری سریال میسازن، سریال تنز میسازن، مثلا سریال آخرشون درهاشیه شخصیت اصلی پر... توی بیمارستان اتفاقیمت و شخصیت های پرستار. فردا دکترا ریختن بیرون اعتراض کردن سریال تعطیل شد اان من دیدم یه سریال جدید داره درست میکنه زاررا شخصیت اصلی مربی فوتباله خب مثل روز برام روشنه که فردا مربی های لیگ هم میریزم بیرون لیگ و تعطیل میکنن و که تا سریال متوقف بشه حالا اینکه بحث تنزشه بحث جدیشم فیلم قرمز اگه یادتون باشه که چقدر پرستارا اعتراض کردن این ما واقعاً این این سه هیچ شوخی با هیچ قومیتی با هیچ زبانی نبود، با یه حرفه بود که متاسفانه اشتباه و افتضاحکاری در حرفه پزشکی تو ایران لاغر خیلی زیاد هست و همون موقعی که اعتراض میکردم به سریال معران مدیری همینجور اخبار می اومد که اشتباه عمل کردن یک اشتباه مرد, مرد مریض رو پذیرش نکردن فلان و فلان و فلان و فلان واقعا ماها چقدر جنبه تنز داریم حالا حتی اگر اون تنز قومیتی نباشه با زبان ما نباشه چقدر مردمانه هستیم که، جانبه تنز داشته باشه در این آمریکا برنامه طنز از خود رئیس جمهور در شرکت میکنه همسر رئیس جمهور سابق آمریکا آقای بیل کلینتون خانم هیلاری کلینتون که برای انتخابات سال آینده هم داره تلاش میکنه که رئیس جمهور بشه در برنامه طنز شرکت می‌کنه نقش یک بارتندر رو بازی می‌کنه کسی که تو بار مشروب سرو میکنه رو بازی میکنه برنامه دیگه هست که حالا آره ترجمه فارسی میشه سرخ کردن یعنی در واقع اون طرف رو میارن یه دیگه هم اصلا تو روش باهاش هزاران شوخی می‌کنن که شوخی‌هایی می‌کنن که ما ها اگه بفهمیم یه یعنی نفران پشت سرمون همشوشوخی کرده حتما میریم و با طرف دعوار را میدازیم ولی هیچ اتفاقی نمیافته، هیچ اتفاقی نمیافته. حالا خودتون قضاوت بکنید که واقعا ما ایرانی ها چقدر جمعبه تنز داریم چقدر تنز دوست هستیم آیا همیشه فقط مشکل شوخی کردن با یک قوم خاص و یک زبان خاص هست یا در کل ما دوست نداریم کسی با ما شوخی کنه ولی دوست داریم با بقیه شوخی بکنیم و زبانشون رو عادتهاشون رو فرهنگشون رو مسخره بکنیم بیشتری صحبت یکی از دوستان رو در مورد گفتم و تاثیر که این جگ بر روی اشخاص و ممکن آینده ای اشخاص بذاره. به من یک صداقی بگم مثلا ما یک شخصی توی یه فامیله میشون خیلی با استعداد بودن و عدای گزارشگرهای خبری رو در میآوردن و کلا زبط میکردن صدا و و دیل رو اخبار ساختگی یا مثلا یه سری اخبار خیلی کوچیک کوچیک رو به صورت ساختگی با حالت گزارشگری میگفتن و زبط میکردن صفتهایی که توی این ام در واقع کاست ضبط شده شاید ماه مثلا 18 سال پیش مثلا 20 سال پیش باشه این حرفی که من میزنم هنوز به آدم هایی که هستن داده میشه صفت های مسخره در واقع چیزهایی که ذهنیت اون بوده و انقدر چرخید و گوش به گوش شنیدن این رو. دیگه این اسم باقی مونده. این خاصیت باقی مونده و این و اینطوری اون آدم مسخره میکنن. م... میدونی چی میگم؟ دقیقا تولید یک جوک همیشکلیه. مثلا، آقا زمان ما میخواییم جوک تعریف کنیم، میخواین تنز باشه، میخواییم خنده دارمشون. به یک جای خاصی بسبتش ندیم. ببین شاید تو اگر الان یک جو که ترکی من اصلا ناراحت نشم و به هم اصلاً برنخوره به خاطر اینکه شناختی که تو دارم و میدونم که تو قصدت مسخره کردن من نیست تحقیق من نیست تحقیق قومیت من نیست خب اتفاقاً قصدت این هستش که جرم رو شاد کنی و اینکه من هم شاد میشم ولی وقتی من جای میرم کسی رو نمیشناسم و اون آدم بدون هیچ چیزی یک هم که این جودی تعریف میکنه یا اینکه یک رفتاری میکنه که من این رو توهین فرض می کنم این را تحقی اینقدرش ج لا مو پس همین دارهطورم که یه موقع طرز خالص یه موقع توهینه یه دن برین باور بودم که اگرچه صحبت رو اکبر عبدی ممکنه نژات تانه بوده باشه اما صحبت ها و پیشنهاد اون شخص عرب هم زنستیزانه بوده و در واقع توهین بوده به دختر اکبر عبدی و اکبر عبدی عنوان یک پدر محافظت کرده از دخترش به رگ قیرتش منوان یک ایرانی برخورده و جواب دندون شکنی داده و از این نظر خیلی هم تشویق کردن کار اکبر عبدی رو بشنریم قسمت آخر صحبتهای دوستانمون رو در این مورد من نظرم اینه که آقای عبدی میخواست صرفاً جمع رو بخندونه، بلکه یه برنامه تلویزیون بوده و فقط می این کار بکنه مهم که اون مزمونی که انتخاب کرده چیزی بوده که تو جامعه خنددار بوده یعنی مزمون منفی نجات پرستانه تو جامعه خنددار بوده که یکی کسی اومده روز سنگ گفته حالا من چیکار کنم به خندم رو فلا خاطره تعریف کنم حال به غرزل خودش بخش از این جامعه است و این تو فکرش بوده این نجات پرستی عربستانیه تو جامعه چون اورف بوده و برای جامعه خانه دار بوده این این مهمه و گناهی اگه دار نبود و این همه واکنش بعدش نبود ب... که کمپین نمیدونم مبارزه با محصولات عربی و اینا آخر، این احتش اصلا داری یه چیز حرف اینجا هست یعنی می‌فهمم که هدفش خانه دار نبوده چون که تنها فقط یک حرف بود یا یعنی یک کلمه یک بود که عبدیل می‌زنه و اون یک کلمه یک آخر هستش که ملت رو میخندونه کلیت ماجران و خنده ای نداره، اعتباقا داره و یک که من قیرت هم به جوش اومده من تأثوب خواستم تأثبی رفتا کنم من بعد هم آمانی که به صورت یک خریدار نگاه کرده به دختر من حالا من واکنشم این بوده فقط اون کلم نهه که خند ادامه که این رو در یک خاطره دیگه به گنجونه کلا و یک مسئله دیگه این که من مشکلم این حرف رکیک است چون این آدم باید توی رسانه این حرف رو اما اصلا توی رسانه هم نزنه اصلا چرا باید, باید این حرف رو بزنیم چه لزومی داره که این حرف های ادبانه بزنیم؟ باید وضعیتی که اون فرد در صحبت میکنه وضعیت اجتماعشان در نظر یعنی یعنی افغان ها یک سنت دارد که زنهاشون هاشون در واقعه باید یعنی این واقعیتی از که ما داریم میشنسیم باید ببینیم، حال میخوام که به برسیم حالا باید ببینیم که اون فرد عرب که این صحبتو کرده آیا این سنتو داره یعنی وقتی که به سن آیا به چشم یک جنس بهش نگاه میکنه که حتی اگر نگاه کنه اونوها نمیتونی توی زند ستی زانده برای شد کنه این مفهوم قرمیه مفهوم مخالف تفکر راید و هنجارها و عرضش های, ها های موجود جامعه عرب است. یک چیز متفاوتی و ما نمیتونیم اون مفهوم دنیای مدرن رو یکی کنیم با مفهوم که در علاستان راجعه بنابراین اولین رسالت ما اینه که ببینیم که آیا این عرب ها اساسا این کار دارن میکنن چه اگر این کار دارن میکنن بله رفتار اکشور عبدی خطا بود چرا که اومده اون فرهنگ را یا جنایده گرفته و زبان به بد و بیراه و در واقع تومین به, به اون فرد عرب شد. حالا یه مسئله دیگه حوزه عمولی و خصوصیه در حوزه خصوصی و در حوزه که فقط آقای اکبر عبدی در گیر بوده و دختر اکبر عبدی و فرد عرب آقای اکبر عبدی حق داشته، هرچی دوست داشته، صحبت کنه دیگه اون به برمیگره به ادب و رفتار اجتماعی و عرف اجتماعی که آموخته او یاد گرفته ارادی به جامعه ایرانی و عرب وارد نیست یعنی عرب از یک و به خاطرمو نمیجوری مثلا میگه عرب ها اینجوریان و ایرانی ها اینجوریان یه مسئله یه حوزه عمومیه بنده به شدت مخالف صد اخلاق هستم در حوزه عمومی چون که سگا سیما هست و طالب طنز هستن مردم دلیل کافی نیست که ما بیاییم عرب ها رو از یک همه اعراب و عدلی خماش بدونیم خوب ها و بطه رو داخلی یک چیسته بریزیم و بگی همه مثل همه یا به همه شو کنیم یا رفتاری که یا یا رفتاری که اتفاق اصداده واسه تو در یک جمع که داره چند از هستم و در تلویزیون که چند میلیون نفر میان داره تعریف کنیم هنرمن رو صرف یک طوال منگی خاص بشه می هنرمن به خاطر اینکه رعالت بگویست اصول اخلاقی بیست و البته خیلی این بحران اخلاقی داشته من اینجا کار آقای عبی و خطاری هست به به نظر من اصلا توهینی و عرب نکرده خب فقط مسئله اینه که دارن در اوند مکه و عرب صحبت میکنن این اومده یک خاطره میگه که توی عربستان اتفاق افتاده شادی اتفاقی توی ایران هم میافتاد همین رو تعریف میکرد همین ریاکشن رو قوا ور واشه قردشین واشه که در تعریف از ظاهر عربه میکنه و میگه عربه می‌گه عرب دیگه نمیگه چرا اینو میگه آره دقیقا همون میگه بریم ما اگر اینجوری نشستم حلاقم بنده یه چنباری نگا کنم ببینم پولشون چه که دوست مثلا در مقابل ترک مثلا این اتفاق باشی میافتاد بازم میگه ترک دیگه بعد هم چه حرفی هم بهش میزنه ولی روزو من جز چون که عرب بوده شاید این حرف نزنه نزده به غیرتش فرد خورده همچنون واکنش نشون میکنه اگر فصیلت رو توجیه نمی کنی یعنی اگر که اون هم بی احترامی به دخترش کرده باشه این اجازه نداره به قومیتش من اصلا توجیح نمیکنم میگم آها. که لزومن رابطه به عرب ستیزی هم. اون نداره ممکن آها. بود یه قشر دیگه ای هم می اومد به این همچه حرفی می زد راج دخترش همچنین واکنش نشینه اگر ما یه سری عرف ها در جامعی ایران وجود داره جالبه البته که وجود نداره و ما فبیزان وجود داره چونکه ما یه سری معلوم و صحبت می کنیم ولی یا میگیم حرف خیلی زشته برای لیان تو خیال رو رو رو بدون توجهیم که یه خانم داره رو شیم فوشه جنسیتی میگیم آره آره نه آره. آره. آره. آره. قسمت دهم ده از پادکست خودمونی امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه شما هم اگر جمعی از دوستانتون دارید در مورد موضوعی صحبت میکنید و دوست دارید که موضوعتون رو در این برنامه پخش بشه حتما با من تماس بگیرید و من خوشحال میشم که از نظرات و صحبت‌های دیگران هم استفاده بکنم تا هفته آینده موضوعی دیگه و برنامه دیگه رو نگهدارتون